فصل پنجم، دانش تخصصی، مشاهدات یا تجارب شخصی گام چهارم به سمت دو دونو دانش وجود دارد، یکی عمومی است، دیگری تخصصی دانش عمومی هرچقدر هم از لحاظ کمیت یا تنوع بزرگ باشد، کاربرد اندکی در پول درآوردن دارد در کل، هیئت‌های علمی دانشگاه های بزرگ هر شکل از دانش عمومی را که تمدن با آن آشناس دارا می ولی بسیاری از استادان این دانشگاه ها پول ندارند یا اگر دارند پولشان اندک است. تخصص آنها تدریس دانش است، نه سازماندهی یا استفاده از دانش. دانش پول را جذب نمی کند. مگر اینکه با برنامهریزی عملی سازماندهی شود و هوشمندانه به سمت هدف مشخصی به نام کسب پول هدایت شود. عدم آگاهی از این واقعیت باعث گیج شدن میلیونها نفر شده است که به غلط باور دارند دانش قدرت است. اصلا چنین چیزی نیست. دانش فقط قدرت بالقوه است. دانش فقط وقتی به صورت برنامه‌ای مشخص عملی سازماندهی شود و به سمت یک هدف مشخص هدایت شود، به قدرت تبدیل می‌شود. امروزه حلقه گمشده در همه های تعلیم و تربیت که تا کنون تمدن به خود دیده است، را می‌توان در این دانست که این نهادها به شاگردان خود یاد نمی‌دهند که پس از اینکه دانش را کسب کردند، چطور آن را سازماندهی کنند. و از آن استفاده کنند. بسیاری از افراد این اشتباه را می کنند که فرض را بر این میگذارند که چون هنری فورد تحصیلات پایینی داشته است اهل تعلیم و تربیت نیست. کسانی که این اشتباه را می کنند نه هنری فورد را میشناسند و نه معنای کلمه تعلیم و تربیت را میدانند. ریشه کلمه dgeکییت به معنی تعلیم و تربیت از ادوس میآید که به معنای به بیرون کشیدن یا رشد از درون است. یک انسانی که تعلیم و تربیت شده، لزوما کسی نیست که انبوهی از دانش عمومی یا تخصصی داشته باشد. انسانی که تعلیم و تربیت شده کسی است که استعدادها و قوای ذهنی خود را چنان پرورش داده که هرچه بخواهد معادل آن خواسته را کسب خواهد کرد بدون اینکه به حقوق دیگران تجاوز کند. هنری فورد نمونه بارز معنای این تعریف است. در طول جنگ جهانی یکی از روزنامه‌های شیکاگو هایی را چاپ می‌کرد که در آن هنری فورد یک سولت طلب نادان نامیده شده بود آقای فورد به این سخن اعتراض کرد و علیه این روزنامه به اتهام افترا شکایت کرد وقتی جلسه دادگاه تشکیل شد وکلا اظهار داشتند که حرف گزافی در مورد هنری فورد نزدند و خود آقای فورد را در جایگاه شهود گذاشتند تا به هیئت منصفه ثابت کنند که آقای فورد نادان است وکلا سوالات متنوعی از آقای فورد پرسیدند و همه آنها می‌خواستند نشان دهند که هرچند آقای فورد دانش تخصصی چشمگیری در مورد اتومبیل سازی دارد ولی در کل نادان است آنها سوالاتی مثل سوال زیر را از آقای فورد پرسیدند بندیکت آرنولد چه کسی بود و انگلیسی ها چند سرباز برای سرکوب کردن شورش سال 1779 به آمریکا فرستادند آقای فورد در پاسخ به این سوال آخری جواب داد دقیقا تعداد سربازانی که انگلیسی ها فرستادن را نمیدانم. ولی شنیدم تعدادشان از آنهایی که آن زمان به کشور برگشته بودند خیلی بیشتر بود در پایان آقای فورد از این سوالات خسته شد و در پاسخ به یک سوال آمیز به جلو خم شد انگشت خود را به وکیلی که از او سوال پرسیده بود نشانه رفت و گفت اگر واقعاً باید به این سوال مسخره‌ای که از من پرسیدید و به سوال‌های دیگر پاسخ دهم بگذارید به شما یادآوری کنم که من یک ردیف دکمه بر روی میزم دارم که هر دکمه را فشار دهم دستیاران من می توانند به هر سوالی که من میپرسم جواب دهند. حالا امکان دارد به من بگویید چرا من باید ذهنم را با دانش عمومی شلوغ کنم تا بتوانم به سوالات جواب دهم در حالی که افرادی در اطرافم دارم که هر دانش و اطلاعاتی را بخواهم در اختیارم میگذارند. این جواب واقعا منطقی بود. این پاسخ وکیل را محوط و گیج کرد همه کسانی که در دادگاه حضور داشتند متوجه شدند که این جواب یک آدم نادان نیست بلکه جواب آدمی است که تعلیم و تربیت دیده است کسی تعلیم و تربیت دیده که وقتی به دانش نیاز دارد بداند از کجا آن را به دست آورد و آن دانش را چگونه به صورت برنامه مشخص و عملی سازماندهی کند فورد با کمک گروه مغز متفکر که به فرمان او بود به همه دانش تخصصی که برای اینکه او را قادر کند یکی از ثروتمندترین مردان آمریکا شود دست یافت. ضرورتی نداشت که او این دانش را در ذهن خودش داشته باشد. قطعا کسی که تمایور و هوش کافی برای مطالعه چنین کتابی ندارد به اهمیت این نکته پی نخواهد برد. قبل از اینکه بتوانید از توانایی‌تان در تبدیل میل به معادل پولیش مطمئن شوید، باید به دانش تخصصی خدمت، کالا یا حرفه‌ای که می‌خواهید در ازای ثروت دهید، دست پیدا کنید و اگر این درست باشد، شما می‌توانید نقطه ضعفتان را به کمک گروه مغز متفکرتان جبران کنید. اندرو کارنگی تصریح کرد که او شخصا از هدف نهایی صنعت فولاد چیزی نمی‌داند و برایش هم مهم نیست که بداند. دانش تخصصی که او برای تولید و بازاریابی فولاد میخواست از طریق گروه مغز متفکرش در اختیار او قرار گرفت کسب ثروت زیاد مستلزم قدرت است و قدرت از طریق دانشی به دست آید که بسیار سازماندهی شده باشد و هوشمندانه به صورت تخصصی هدایت شده باشد ولی لزوماً دانش مجبور نیست در مالکیت کسی باشد که ثروت کسب می کند. پس باید کسی که امید دارد ثروت زیاد کسب کند به کسی که تعلیم و تربیت لازم برای فراهم آوردن دانش تخصصی لازم را ندارد امید و دلگرمی بدهد کسی که بتواند یک گروه مغز متفکر را که در کسب پول دانش مفید دارد سازماندهی و هدایت کند به اندازه هر یک از افرادی که در این گروه هستند آموزش دیده است به یاد داشته باشید که اگر دچار عقده حقارت هستید علت آن است که تحصیلاتتان محدود شده است. توماس ادیسون در طول زندگی خود فقط سه ماه به مدرسه رفت او نفاقد تعلیم و تربیت بود و نه در فقر مرد. هنری فورد تا کلاس ششم تحصیل کرده بود ولی توانست خود را به لحاظ مالی به چنان جایگاه رفیع برساند. دانش تخصصی از فراوان و ارزانترین شکل خدماتی است که تا به حال پدید آمده اند. اگر به این سخن شک دارید، حقوق استادان دانشگاه را چک کنید. می ارزد که بدانید چطور دانش را بخرید. قبل از هر چیز، مشخص کنید که نوع دانش تخصصی را نیاز دارید و چه هدفی برای آن لازم است. هدف اصلیتان در زندگی، هدفی که در جهت آن کار می کنید، تا حد زیادی به شما کمک خواهد کرد که مشخص کنید نوع دانشی لازم دارید. وقتی این مسئله را حل و فست کردید، حرکت بعدیتان مستلزم آن است که اطلاعات دقیقی راجع به منابع مطمئن دانش داشته باشید. مهمترین این منابع به شرح زیرند. الف تجربه و تعلیم و تربیت خود فرد ب تجربه و تعلیم و تربیت حاصله از مشارکت دیگران یعنی گروه مغز متفکر جیم کالجها. و دانشگاه ها دال کتابخانه های عمومی از طریق کتاب ها و نشریات ادواری که همه دانشی که توسط تمدن سازماندهی شده در آنها یافت می شود ه های آموزشی ویژه از طریق مدارس شبانه و مخصوصا مدارس مبتنی بر مطالعه در خانه همانطور که دانش لازم است باید از طریق برنامه های عملی و برای یک هدف مشخص سازماندهی و به کار گرفته شود. دانش هیچ ارزشی ندارد جز دانشی که از کاربریش برای یک هدف ارزشمند به توان استفاده برد. این یکی از دلایلی است که چرا مدارک دانشگاهی ارزش زیادی ندارند. آنها نشان دهنده چیزی نیستند، جز دانش متفرقه و جور و جور اگر به فکر تحصیلات بالاتر هستید ابتدا هدف دانش اندوزی تان را مشخص کنید سپس بدانید این نوع دانش را چطور میتوان از منابع قابل اعتماد به دست آورد افراد موفق در همه شغلها هرگز از کسب دانش تخصصی که مربوط به هدف کسب و کار یا حرفشان باشد دست نمی کشند. کسانی که موفق نیستند معمولا این اشتباه را می کنند که باور می کنند وقتی فرد تحصیل را تمام کند دانشی که نیاز به دوره دارد به پایان میرسد حقیقت این است که تحصیل چیزی نیست جز قرار دادن فرد در راه آموختن اینکه چطور دانش عملی را کسب کند با این جنیای تغییر تغییریافته که در انتهای دوره رکود اقتصادی شروع شد تغییرات شگفت در ملزومات تعلیم و تربیت ایجاد شد امروزه اصر اصر تخصصگرایی گرایی است رابرت پیمور مسئول قرار و دانشگاه کلمبیا بر این حقیقت تاکید کرد بیش از هر کس به متخصص نیاز داریم شرکتها معمولا دنبال افرادی هستند که در حوزههایی تخصص داشته باشند مثل فارغ و تحصیلان رشته های حسابداری و آمار، انواع مهندسی، روزنامه معماری، شیمی و همچنین رهبران برجسته و فعالانی با مدارک متوسطه. کسی که در دانشگاه فعال بوده است شخصیتش طوری است که با هر نوع آدمی کنار میآید و در کنار مطالعاتش به اندازه کافی کار کرده است. او از شاگردی که فقط درس خوانده است خیلی جلوتر است. به بعضی از آنها به خاطر اینکه واجد همه شرایط هستند چند شغل و حتی 6 شغل پیشنهاد می شود. آقای مور که قبول ندارد شاگردی که نمره الف گرفته حتما به شغل بهتری خواهد رسید می گوید، اکثر شرکتها نه تنها به سوابق دانشگاهی بلکه به سوابق کاری و شخصیت فرد نگاه می کنند. او صاحب یکی از بزرگترین شرکت های صنعتی و یکی از رهبران حوزه کاری خود بوده است. او در نامه‌ای در مورد دانشجویان سال آخر دانشگاه می‌گوید ما اساساً علاقمندیم کسانی را پیدا کنیم که بتوانند در کار مدیریت پیشرفت استثنایی بکنند به همین دلیل ما بر خصوصیاتی مثل منش، هوش و شخصیت تاکید می‌کنیم و نه بر زمینه خاص تحصیلی کارآموزی پیشنهادی آقای مور یک نظام آموزشی کارآموزی برای شاگردان در ادارات، دفاتر، مغازه‌ها و مشاغل سنتی در طول تعطیلات تابستان را پیشنهاد می‌کند و تصریح می‌کند از هر دانشجویی که دو یا سه سال در دانشگاه درس خواند، باید خواسته شود که اگر در یک برنامه آموزشی آکادمیک غیرتخصصی بدون هدف پیشرفته است، توقفی کند و یک دوره مشخص را برای آینده انتخاب کند. او با تاکید بر اینکه نهادهای آموزشی مسئولیت مستقیم تلی را برای هدایت شغنی میپذیرند میگوید کالجها و دانشگاه ها باید با ملاحظات عملی که همه حرفه ها و مشخله امروزی از متخصصان میطلبند روبرو شوند. یکی از قابل اعتمادترین و عملیترین منابع دانش که در دسترس ی کسانی است که به دانش تخصصی نیاز دارند مدارس شبانه است که در اکثر شهرها فعاله مدارس مکاتبه‌ای در همه موضوعاتی که آنها را بتوان با روش آزاد تدریس کرد در همه جاهایی که پست آمریکا میرسد آموزش‌های تخصصی می‌دهند یکی از امتیازات آموزش به روش مطالعه در خانه انعطاف پذیری در برنامه مطالعاتی است که به فرد اجازه می‌دهد در طول اوقات فراغتش مطالعه کند یک امتیاز عالی دیگر این سبک آموزشی البته اگر مدرسه به درستی انتخاب شود، این است که اکثر دوره هایی که در این مدارس ارائه می شود از امتیاز عالی مشاوره برخوردار هستند که ارزش گران قیمتی برای کسانی دارد که به دانش تخصصی نیاز دارند. شما در هر کجا که زندگی می کنید می توانید از این مزایا ها شوید. هر چیزی که بدون تلاش و بدون هزینه کسب شود، معمولا قدر آن دانسته شود و غالبا بیعتبار می شود. شاید به همین خاطر است که فرصت‌های عالی اندکی در مدارس دولتی وجود دارد انضباط فردی که شخص از یک برنامه دقیق مبتنی بر مطالعه تخصصی دریافت می‌کند تا حدی فرصت از بین رفته یعنی دانش بدون هزینه را جبران می‌کند مدارس مکاتبه‌ای نهادهایی هستند که سازماندهی زیادی دارند شهریه آنها آنقدر پایین است که مجبور می شوند بر پرداخت سریع اصرار کنند. اینکه از شاگرد خواسته شود شهریه را پرداخت کند، حال شاگرد چه نمره خوب گرفته باشد چه نمره بد، باعث می شود وقتی یک نفر انصراف می دهد، دیگری جای او را بگیرد. مدارس مکاتبی به اندازه کافی بر روی این واقعیت تاکید نکردند چون حقیقت این است که قسمتهای عالی آنها عبارتند از تصم سرعت عمل، عمل و این عادت که فرد چیزی را که شروع می کند، تمام کند. بیش از سی سال پیش این را به تجربه آموختم. در یک دوره مطالعه در خانه در رشته تبلیغات ثبت نام کردم. بعد از اینکه هشت یا ده درس را تمام کردم مطالعه را کنار گذاشتم. اما مدرسه همچنان برای من صورت حساب میفرستاد. اصرار داشت که چه به دوره ادامه دهم چه ادامه ندهم باید هزینهش را بپردازم. تصمیم گرفتم اگر مجبور شدم هزینه دوره را که به لحاظ قانونی تعهد کرده بودم بپردازم پرداخت کنم باید درسها را کامل کنم و در ازای پولی که دادم چیزی دریافت کنم آن زمان احساس می کردم سیستم وصول مدرسه بیش از حد منظم است ولی بعدها فهمیدم آن بخشی ارزشمند از دوره ی آموزشی بود که حزینه بابت آن پرداخت نشده بود من مجبور شدم شهریه را پرداخت کنم و دوره را ادامه دهم و آن را کامل کنم بعدها متوجه شدم سیستم وصول کارآمد آن مدرسه بیشتر برای کسب پول کمکم کرد علت آن آموزشی بود که با اکراه زیاد در رشته تبلیغات دریافت کردم ما در این کشور چیزی را داریم که گفته می شود بزرگترین سیستم مدارس طولانی مدت در دنیاست ما پولهای زیادی بر روی ساختمانهای عالی سرمایه گذاری کردیم همرو نقل راحت برای بچههایی که در مناطق روستایی زندگی میکنند فراهم آورده ایم تا آنها به بهترین مدارس بروند. ولی این سیستم فوقالعاده یک نقطه ضعف مهم دارد و آن مجانی بودن آن است. یکی از چیزهای عجیب انسانهایی این است که آنها فقط چیزی را که قیمت داشته باشد ارزشمند می دانند. مدارس آزاد آمریکا و کتابخانههای آزاد دولتی بر افراد تأثیر نمی چون آنها آزاد هستند. پس علت اصلی این اینکه خیلیها بعد از اینکه مدرسه را ترک می کنند و به سراغ کار می روند کسب آموزش اضافی را لازم میدانند را فهمیدید. این نیز یکی از دلایلی است که کارفرمایان به کارکنانی که در دوره های مطالعه در خانه شرکت می کنند توجه بیشتری دارند. آنها به تجربه یاد گرفتند که هر فردی میخواهد بخشی از اوقات فراغت خود را به مطالعه در خانه بگذراند خصوصیاتی دارد که رهبری را جبران می کنند. این تصدیق یک حرکت خیرخواهانه نیست یک نظر منطقی کاری است در مورد نقش کارکنان. انسان یک نقطه ضعف دارد که علاج ندارد. این نقطه ضعف عمومی آرزو نداشتن است. افراد مخصوصا افراد حقوق بگیر که وقت آزادشان را برنامه ریزی می کنند تا برنامه مطالعه در خانه را فراهم آورند به ندرت به مدت طولانی عقب میمانند. عمل آنها راه را برای حرکت سعودی باز می کنند. موانع زیادی را از سر راه خود بر می و از کسانی که قدرت دارند که از آنها به صورت فرصت استفاده کنند سود دوستانه می برد. روش آموزشی مطالعه در خانه مخصوصاً برای نیاز کارکنانی مناسب است که پس از اینکه مدرسه را ترک می کنند می بینند باید دانش تخصصی اضافی کسب کنند ولی وقت آزاد ندارند که به مدرسه برگردند. با تغییر و شرایط اقتصادی در زمان رکود اقتصادی هزاران نفر مجبور شدند که منابع اضافی یا جدید درآمد را پیدا کنند برای اکثر این افراد راه حل این مشکل فقط کسب دانش تخصصی بود خیلی ها مجبور شدند مشاغلشان را کاملا تغییر دهند وقتی یک تاجر می‌دید که یک خط کالا فروش ندارد معمولا آن را با چیز دیگری که تقاضا دارد جایگزین می‌کند کسی که کارش بازاریابی برای خدمات فردی است، باید یک تاجر کارآمد نیز باشد. اگر خدمات او موجب سود کافی در یک شغل نمی‌شوند، او باید سراغ شغل دیگری برود که فرصت‌های بیشتری به او بدهد. استوارت آسنویر ابتدا در مقام یک مهندس ساخت و ساز کار کرد و این خط کاری را ادامه داد تا اینکه رکود اقتصادی باعث محدودیت بازار او شد. طوری که او نتوانست درآمدی که لازم داشت را کسب کند. او از خودش فهرستی تهیه کرد. تصمیم گرفت حرفه خود را به رشته حقوق تغییر دهد. به مدرسه برگشت و دوره‌های خاصی را گذراند که خود را با آنها آماده می‌کرد تا یک وکیل شرکتی شود. علیرغم این واقعیت که رکود اقتصادی تمام نشده بود، او دوره آموزشی خود را کامل کرد. در آزمون کانون وکلا قبول شد و به سرعت یک دفتر وکالت پرسود در دالاس تگزاس به راه انداخت. او آنقدر سرش شلوغ شد که خیلی از مراجعان را نمیپذیرفت. برای روشن شدن مطلب و پیشبینی بهانه کسانی که میگویند من نتوانستم به مدرسه بروم چون سرپرست خانواده بودم یا من سنم برای رفتن به مدرسه خیلی زیاده باید به اطلاع برسانم که آقای ویر وقتی به مدرسه برگشت بیش از چهل سال سن داشت و ازدواج کرده بود. علاوه بر این، آقای ویر با انتخاب دقیق دوره های بسیار تخصصی در دانشگاه هایی که بیشترین آمادگی را برای تدریس درس‌های انتخابی دارند، کاری را در طول دو سال تکمیل کرد که اکثر دانشیان حقوق آن کار را در چهار سال انجام می‌دادند. بسیار ارزشمند است که شما بدانید چگونه دانش را بخرید. کسی که صرفاً به این خاطر دست از مطالعه برمیدارد که مدرسه را تمام کرده است در هر کاری باشد برای همیشه محکوم به زوال و عدم پیشرفت است راه موفقیت جستجوی مستمر دانش است بیایید یک مورد خاص را در نظر بگیریم در طول دوره رکود یک فروشنده که در یک مغازه وبار کار میکرد شغلش را از دست داد. او که قبلا مقداری تجربه حسابداری داشت، دوره ویژه‌ای در حسابداری گذراند. با امور جدیدترین تجهیزات دفتری و حسابداری آشنا شد و برای خودش دست به شد. او با کاروبار فروشی که قبلا برای او کار میکرد شروع کرد و با بیش از 100 تاجر کوچک قرارداد بست که در قبال دستمزد ماهانه خیلی پایینی کارهای حسابداری آنها را انجام دهد. ایده او چنان عملی بود که او به زودی فهمید که باید یک دفتر سیار در یک کامیون سبک تحویل کالا بزند و آنجا را با دستگاه های مدرن حسابداری مجهز کند او حالا مجموعی از دفاتر حسابداری دارد که میچرخند و چند دستیار استخدام کرده است که خدمات حسابداری ارائه میدهند و پول خوبی به دست دانش تخصصی به اضافه تخیل ترکیباتی بودند که وارد این کسب و کار منحصر به فرد و موفق شدند. پارسال صاحب آن کسب و کار مالیات درآمدی پرداخت کرد که تقریباً ده برابر آن چیزی بود که تاجری پرداخت کرد که در زمان رکود اقتصادی کار کرده بود این رکود اقتصادی او را مجبور کرد تا دوچار گرفتاری شود که در واقع نعمتی بود مخفی شروع این کار موفق چیزی نبود جز یک ایده از آنجایی که من این امتیاز را داشتم که آن ایده را در اختیار فروشنده بیکار بگذارم حالا فکر می‌کنم این امتیاز را نیز دارم که ایده دیگری را پیشنهاد کنم که امکان درآمد بیشتر را فراهم می‌آورد. همچنین این امکان وجود دارد که به هزاران نفر که احتیاج مبرمی به یک خدمت دارند، خدمت مفیدی ارائه شود. این ایده به وسیله فروشنده‌ای پیشنهاد شد که فروش را کنار گذاشت و وارد کار حسابداری شد. وقتی این برنامه به عنوان راه حلی برای مشکل بیکاری او پیشنهاد شد، او فوراً فریاد زد از این دیده خوشم میاد ولی چطور میتونم را به پول تبدیل کنم به عبارت دیگر او شکایت کرد که بعد از اینکه او دانش حسابداری را کسب کرده نمیداند چطور برای آن بازاریابی کند این باعث شد مشکل دیگری ایجاد شود که میبایست حل شود با کمک یک خانم جوان تایپیست که تند نویس بود توانست این گزارش را جمع جور کرده و کتاب خیلی جذابی آماده نماید که مذایق سیستم جدید حسابداری را توصیف میکرد صفحات به قشنگی حروف چینی شدند و در یک آلبوم بریده جراید چسبیده شدند این کتابچه به عنوان یک فروشنده خاموش مورد استفاده قرار گرفت که با آن داستان این کسب و کار جدید با چنان اثر بخشی روبرو شد که صاحب آن آنقدر درآمد داشت که نمیتوانست از عهده همه آنها براید. هزاران نفر در سراسر سر کشور هستند که به خدمات متخصص خرید و فروش هایی نیاز دارند که قادرند گزارش جالبی برای استفاده در بازاریابی خدمات فردی تهیه کنند. درآمد کامل سالیانه از چنین خدماتی به راحتی از درآمد بزرگترین آجانس های کاریابی فراسر می رفت و مزایای خدمات بیشتر برای خریدار است تا برای آجانس های کاریابی ایدهی که در اینجا توصیف می شود از روی ضرورت خلق شد به منظور این که یک ضرورت را برآورده کند ولی فقط به خدمت کردن به یک نفر بسنده نکرد خانومی که این ایده را خلق کرد یک تخیل قوی داشت او در این فکر بکر جدید خود حرفه جدیدی را خلق کرد که مقدر شده بود خدمات ارزشمندی به هزاران نفری ارائه دهد که در بازاریابی برای خدمات فردی به راهنمایی عملی نیاز داشتند. این خانم پر انرژی که از موفقیت آنی اولین ایده خود تحت عنوان برنامه آماده شده برای بازاریابی خدمات فردی انگیزه پیدا کرده بود به حل مشکل مشابهی پرداخت، که پسرش پیدا کرده بود پسرش تازه کالج را تمام کرده بود ولی اصلا نتوانسته بود بازاری برای خدمات خود پیدا کند برنامه‌ای که او برای استفاده خود تدوین کرد عالیترین نمونه برای خرید و فروش خدمات فردی بود که تا به حال دیدم وقتی این برنامه تکمیل شد حاوی پنجاه صفحه با حروف چینی زیبا بود به همراه اطلاعات بسیار منظمی که داستان تحصیلات تجربه‌های فردی و توانایی ذاتی پسرش و اطلاعات بسیار متنوعی که در اینجا نمی‌توان توصیف کرد را بیان می‌کرد. این برنامه حاوی توصیف کامل موقعیت دلخواه پسرش به همراه تصویر عالی از برنامه دقیق او برای پر کردن این موقعیت بود. آمادهسازی کتاب مستلزم کار چند هفته است که در طول این مدت این خانم پسرش را تقریبا هر روز به کتابخانه عمومی می تا دادههایی که برای فروش خدمات به بهترین حالت لازم هستند را تهیه کند. او پسرش را به سراغ همهی رقبای کارفرمای احتمالیش برستاد و از آنها اطلاعات مهمی را در مورد روش های کاری در شکلگیری برنامه مورد نظرش کسب کرد که برای استفاده در پر کردن موقعیت دلخواهش ارزش زیادی داشت. وقتی این برنامه تمام شده بود، حاوی بیش از شش پیشنهاد برای استفاده کارفرمای احتمالی بود. شاید یکی بپرسد، چرا این همه دردسر سر بکشیم تا یک شغل را به دست آوریم؟ پاسخ این سؤال ساده و در عین حال چشمیر است. چون به موضوعی میپردازد که در حد و اندازه های مشکل میلیون ها مرد و زنی است که تنها منبع درآمدشان خدمات فردی است. پاسخ این است. انجام درست یک کار به هیچ وجه زحمت نیست. برنامه‌ای که به وسیله این زن برای سود پسرش آماده شد، به او کمک کرد که شغلی را که برای آن تقاضا داده بود، در اولین مصاحبه و با دست دستمزدی که به وسیله خودش تعیین میشد به دست آورد. این نیز مهم است. برای کسب آن موقعیت لازم نبود مرد جوان از سفر شروع کند. او کار خود را به عنوان یک مدیر جزء با دستمزد یک مدیر شروع کرد. میپرسید چرا این همه زحمت به خودمان بدهیم؟ چون اگر این مرد و جوان از صفر شروع میکرد، حداقل ده سال طول میکشید تا یک برنامه منظم پیدا کند تا مناسب آن موقعیت باشد. ایده شروع کردن از صفر و حرکت به جلو شاید معقول به نظر برسد ولی اعتراض اصلی که در مورد آن صورت میگیرد این است. خیلی از کسانی که از صفر شروع میکنند، هیچگاه نمیتوانند سرشان را به اندازه‌ی کافی بالا بگیرند تا ها را ببینند در نتیجه پایین میمانند این را نیز باید به یاد داشت که دیدی که به ترین نقطه دوخته شود خیلی روشن یا دلگرم کننده نیست چنین دیدی غالباً غالبا بلندپروازی و آرزو را میکشد ما این را روزمرگی مینامیم که معنای آن این است که ما تقدیرمان را میپذیریم چون عادت به یک نواختی پیدا می‌کنیم عادتی که نهایتاً چنان قوی می‌شود که ما از اینکه آن را کنار بگذاریم دست برمیداریم. این دلیل دیگری است برای اینکه چرا ارزش دارد حرکت را از یکی دو پله بالاتر از نقطه صفر شروع کنیم با این عمل عادت می‌کنیم به اطراف خود نگاه کنیم ببینیم دیگران چطور به پیش می‌روند فرصت‌ها را ببینیم و بدون شک از آنها استقبال کنیم دان هالپین نمونه عالی است که منظور مرا نشان می دهد. او در طول سالهای تحصیل مدیر یک تیم فوتبال در مسابقات مشهور قهرمانی ملی نوتردام در سال 1930 بود که در آن زمان هدایت آن با کنات رکنه فوتبالیست فقید بود. همانطور که اندرو کارنگی این رهبر بزرگ صنعتی به دستیاران جوان تجاری خود الهام داد که اهداف بالایی را برای خودشان تعیین کنند، شاید دان هالپین نیز از این مربی بزرگ فوتبال الهام گرفت که اهداف بزرگی را برای خود تعیین کند. هالپین جوان کالج را در یک دوری بسیار نامطلوب تمام کرد، یعنی زمانی که رکود اقتصادی باعث بیکاری شده بود. او پس از اینکه دوره ای را در حوزه بانکداری سرمایهی و تصاویر متحرک گذاران به فروش وسایل شنیداری الکتریکی به صورت پورسانتی مشغول شد. همه می توانستن چنین کاری را شروع کنند و حالپین را می دانست. اما برای او کافی بود که در فرصت به رویش باز شود. او تقریباً به مدت دو سال به شغلی مشغول بود که با آن علاقه ای نداشت و اگر برای رفع این اشکالی کاری کرد هرگز نمی توانست از زیر بار آنکار کمر راست کند. ابتدا هدف او این بود که معاون مدیر فروش شود و سرانجام به این شغل دست پیدا کرد. این یک گام رو به جلو وی را چنان از دیگران بالا کشاند که او را قادر ساخت فرصتهای بزرگتری را ببیند و او را در جایی قرار داد که فرصتها هم می توانستند او را ببینند. او چنان فروش خوبی در حوزه وسایل شنیداری داشت که آقای ام ای اندروز که رئیس هیئت مدیره شرکت محصولات دیکتوگراف که یک رقیب تجاری شرکتی بود که هالپین برای آن کار میکرد میخواست بداند این دان هالپین کیست که از شرکت دیکتوگراف که شرکت جاافتاده‌ای بود فروش خیلی زیادتری دارد او هالپین را ملاقات کرد وقتی مصاحبه آنها تمام شد هالپین به مقام مدیریت جدید فروش و ریاست قسمت آکوستیکن رسید اندروز به مدت سه ماه به فلوریدا رفت و او را رها کرد تا یا روی پای خود بیستد یا فنا شود. حال پین فنا نشد. روحیه کناد راکنه که همه دنیا برنده را دوست دارد و وقتی ندارد که به بازنده بدهد به او انگیزه داد و با چنان انرژی به کار پرداخت که اخیراً به مقام معاونت شرکت و مدیر کل بخش آکوستیکن و رادیوی خاموش دست یافت. این مقامی است که خیلی ها افتخار می کنند که پس از ده سال تلاش جدی به آن دست یابند. هالپین با شگردی که به کار برد در مدت شش ماه به این مقام رسید. به سختی می توان گفت آقای اندروز یا آقای هالپین کدام یک شایستگی ستایش و تحسین بیشتری دارند چون هر دو شواهدی دارند دال بر اینکه واجد خصوصیتی هستند که به ندرت یافت می شود. این خصوصیت که آنها به مقدار زیاد دارا هستند تخیل نام دارد. آقای اندروز از این بابت شایسته افتخار است که در هالپین جوان یک آدم بلند پرواز و اهل عمل دید که در اوج خود بود. هالپین از این بابت شایسته افتخار است که امتنا کرد از زندگی خود در ازای شغلی که دوست ندارد چشم بپوشد و این یکی از نکات بسیار مهمی است که سعی می کنم در طول این فلسفه آن تحکید کنم. و آن این است که به خاطر شرایطی که اگر بخواییم آنها را کنترل کنیم، که می توانیم آنها را کنترل کنیم، سرانجام به مقامهای بالا می رسیم، یا در قار و در پایینترین جاها می مانیم. همچنین سعی می کنم بر نکته مهم دیگری تمرکز کنم و آن این است که موفقیت و شکست تا حد زیادی نتیجه عادت هستند. من اصلا شک ندارم که رابطه و معاشرت نزدیک دان هالپین با بزرگترین مربی فوتبال که آمریکا تا به حال به خود دیده است میل خاصی را در ذهن او کاشت میلی چنان عالی که باعث شده بود تیم فوتبال نوتردام به شهرت برسد این حقیقت دارد که قهرمان پرستی مفید است به شرطی که یک برنده را بپرستیم هالپین به من میگوید گوید یکی از بزرگترین رهبران انسانها در طول تاریخ است باور من در این نظریه که معاشرت‌های کاری عواملی حیاتی هم در شکست و هم در موفقیت هستند، اخیراً نمود پیدا کرد. یعنی زمانی که پسرم بلر برای یک شغل با دان هالپین مذاکره می‌کرد. آقای هالپین به او پیشنهاد کرد که در ابتدا دستمزدی نصف آنچه او میتوانست از شرکت رقیب بگیرد به او بدهد. من در مقام یک پدر به پسرم فشار آوردم که شغل پیشنهادی را بپذیرد. چون باور دارم که معاشرت نزدیک با کسی که قبول نمی کند با شرایطی که از آن خوشش نمی‌آید، سازش کند امتیازی است که هرگز نمی‌توان آن را بر حسب پول سنجید کسی که در موقعیت پایین باشد در یک وضعیت یک نواخت ملالاور و غیر سوداور خواهد بود به همین خاطر است که توصیف کردهام که با برنامه ریزی صحیح چطور می توان شروع از نقطه صفر را دور زد به همین خاطر است که توصیف این حرفه جدید که به وسیله خانمی ارائه شد که چون میخواست پسرش یک تفریح دلخواه داشته باشد انگیزه پیدا کرد تا یک برنامه ریزی درست و حسابی کند با شرایط تغییر یافتهی که با رکود اقتصادی جهانی حاصل شد راه جدیدتر و بهتری برای بازاریابی خدمات شخصی ضرورت پیدا کرد به سختی میتوان مشخص کرد با اینکه در مقایسه با اهداف دیگر پول بیشتری در ازای خدمات شخصی رد و بدل می شود، چرا کسی تا به حال این نیاز فوق را کشف نکرده است. کل دستمزدی که به صورت ماهانه به افراد پرداخت می شود چنان هنگفته است که به صدها ها میلیون و توضیح سالانه ی آن به میلیاردها میرسد. شاید بعضی ها در ایده ای که در اینجا به صورت مختصر توصیف می شود مرکز ثروتی را که میخواهند به دست آورند. ایده هایی که مزیت خیلی کمتری دارند نهال هایی شدند که ثروت هنگفتی از آنها حاصل شده است. مثلا ایدهی موسوم به فروشگاه 5 سنتی کهووولوورس. در ابتدا مزیت اندکی داشت ولی ثروت هنگفتی برای مبتکرش برمغان آورد. کسانی که فرصت را چیزی میدانند که در چنین پیشنهادی کمین کرده است فصل برنامه ریزی منظم برایشان بسیار ارزشمند خواهد بود. جالب اینجاست که معاملهگر کارآمد در خدمات شخصی در هر جایی که مردان و زنانی باشند که دنبال بازارهای بهتری برای خدمات هستند تقاضای بیشتری برای خدمات خود پیدا خواهد کرد. با استفاده از اصل مغز متفکر کمتر کسی با استعداد مناسب میتواند یک شراکت ایجاد کند و به سرعت به کسب و کار سودآور برسد. فرد باید نویسنده خوبی باشد. استعداد طبیعی برای تبلیغات و فروش داشته باشد، در حروفچینی و نامنگاری زبردست باشد و خدمات خود را به بهترین شکل به اطلاع دیگران برساند. اگر کسی همه این توانایی‌ها را داشته باشد، می‌تواند این کسب و کار را آنقدر ادامه دهد تا اینکه کار برای او بیش از حد بزرگ شود. زنی که برنامه فروش خدمات شخصی را برای پسرش آماده کرد، حالا از همه قسمت‌های کشور از او میخواستند که در آماده‌سازی برنامه‌های مشابه برای آنهایی که خواستار بازاریابی خدمات شخصیشان برای کسب پول بیشتر هستند، همکاری کند. او نویسندگان، هنرمندان و حروفچین با تجربهی دارد که این توانایی را دارند که شعر حال را با چنان اثر بخشی بزرگ جلو دهند تا خدمات شخصی یک فرد را برای کسب پولی خیلی بیشتر بازاریابی کنند و خیلی بیشتر از دستمزدهای رایجی که در قبال خدمات مشابه پرداخت می شوند دریافت کنند. او چنان به توانایی خود اطمینان دارد که درصدی از پرداخت افزایش یافتهی که او به مراجعان خودش کمک کرده تا سود کنند را به عنوان بخش اصلی حق و زحمه قبول می کند. نباید فرض را بر این گذاشت که برنامه او از فروشندگی زیرکانه‌ای تشکیل شده است که او به وسیله آن به مردان و زنان در راه کسبشان کمک می‌کند. او هم مواظب منافع خریدار است و هم به منافع فروشنده خدمات شخصی. در نتیجه، برنامه‌های خود را طوری تنظیم می‌کند که کارفرما در قبال پول اضافی که پرداخت می‌کند، ارزش کاملی را نیز دریافت می‌کند. روشی که او به وسیله آن به این نتیجه شگفتانگیز می میرسد یک راز حرفه‌ای است که او آن را فقط برای مراجعان خود فاش میکند اگر از روی تفکر به دنبال کانال سودمندتری برای ارائه خدمات شخصیتان باشید این پیشنهاد میتواند محرکی باشد که دنبال آن بوده اید. این ایده میتواند درآمدتان را از درآمد یک پزشک وکیل یا مهندس معمولی که سالها در دانشگاه درس خوانده است بیشتر کند این ایده را میتوان به کسانی داد که دنبال موقعیت های جدید هستند یعنی عملا همه موقعیت هایی که به توانایی مدیریتی یا اجرایی نیاز دارند و به کسانی که میخواهند درآمدشان را در موقعیت فعلیشان دوباره تنظیم کنند ایده‌های خوب قیمت ثابتی ندارند پشت سر همه ایده‌ها دانش تخصصی وجود دارد متاسفانه برای کسانی که ثروت را به مقدار فراوان کسب نمی کنند، دانش تخصصی فراوان است و راحت از ایده ها به دست به خاطر همین حقیقت، تقاضای عمومی و فرصتی روزافزون برای کسی وجود دارد که قادر باشد به مردان و زنان کمک کند تا خدمات شخصیشان را به همراه سود ارزه نمایند، توانایی یعنی تخیل. خصوصیتی که برای ترکیب دانش تخصصی با ایده ها به شکل برنامه های سازمان یافته برای کسب ثروت لازم است اگر تخیل داشته باشید این فصل ایده‌ای به شما میدهد که برای شروع ثروتی که خواهان آن هستید کفایت می کند. به یاد داشته باشید ایده مهمترین عامل است دانش تخصصی را از جاهای مختلفی میتوان به دست آورد